السجناء جمع سجین، زندانی ها، السجن، زندان، یهربو، فرار می مرهق مرحق، بسیار خسته، يسلم نفسه، خودش را تسلیم می کند استطاع احد السجناء ان یهرب من السجن بعد اثنت عشرت سنه ولما وصل الى البيت متعبا مرهقا قالت له زوجته سمعت من الأخبار انك هربت قبل تسع ساعات اين كنت قتلها وعاد ليسلم نفسه یه زندانی بعد از دوازده سال میتونه از زندان فرار کنه و همین که خسته و کوفته میرسه خونه زنش بهش میگه از اخبار شنیدم که نه ساعت از زندون فرار کردی کجا بودی طرف زنه رو میکشه و برمیگرده تا خودش رو تحویل بده.